درس قواعد فقه و سیاستم جلسه هشتم از هفته چهارم 4 آبان 1400 ادامه بحث روش استنباط قواعد بحث ادله لوک الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین صلی الله علی سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد و اهلا اهل بیت اطهارین المعصومین سیما بقيه الله في العزیز وحب وكل العالم لله الفدا تكون در مجموع عرض شد که ادله لبی به اندازه ای که می توانیم به اونها تمسک بکنیم میشه به اونها عنایت بکنیم و کل ادله لطفی معاملن گفته میشه چون لا دلیل لفظی نیستند اطلاق ندارند اطلاع نمی توانند داشته باشن بنابراین ما به اندازه قدر متیقن به اونها می میکنیم خب حالا در این جناب اطلاع سید کازم در تقریر بحثشون از شهیست سدر این, این رو میادن در آخر بحث اجماع اینکه میگه آقا فقط همین اندازه، اما اون معقد چی؟ اون چقدر حجیت داره میگه چون که از سنخ شهادت مجمعینه خب اون ما دلیل بر حجیت زور شهادتشون نداریم حالا این یه بحث دیگه است خب در همین جا این فرقه که میخوانیم البته یه تحلیل هایی هم میتوانیم داشته باشیم دمود اجماع اجماع مرکب موارد اینگونه جا این, این فقره مهمه ارز میکنم صفحه جلد دو صفحه سی و پونزه ایشان بحث حساب احتمالات رو میارن پشت سرش یه جمله هم میارن میگن که ما اینجا از تعازد قرائن ناقص میتوانیم استفاده کنیم اما این در اجماع مرکب نمیام پس اینجا من این داخل پرانتز در این فقره که اینجا داریم این که خب یه بحث سر این بود که حجیت این معقد اجماع از منظر شهادت اونهاست یه سوالم که خب مثلا در اجماع مرکب آیا ما میتونیم بیایم از حساب احتمالات استفاده کنیم میگن نه چرا چون که بعضی از اینها خطا میکنن بعد این نکته اساسی است اون روی کرده استنباتی و مکتب در واقع تجمیه قرائن و تراکوم زنون اینجا است اون حساب احتمالاتی که گفته میشه در این بیان ایشان با اون بیان تعبیر تجمیه زنون و زنون خلاصه تراکوم زنون اینجا ترکیب میشه متطعبیرشون تعازد قرائن ناقصه است پشت سرش میفرماین چون که اینجا ما یه قسمت هست در این موارد اجماع مرکب خلاصه یه در دیدیم خطا کردن یه قسم از اون قرائن ناقصه گذاشته شده کنار لذا ما اینجا دچار ای مشکل میشیم در همین بحث اجما اینجا هم این بحث تمسلو که به اجماع تکمله هم داره ارز میکنیم میفرمایند محبوم شهید سعد به تقریر جناب زد... سیدکازم هایری بزرگوار جلد دو صفحه سی و جار خب شرایط تمسلو به اجماع از جمله اجماع محصل چیه؟ میفرمایند که ننو لا نرل اجماع فی و اجماع در کتاب. کتاب و سنت اجماع در که کتاب و نیست بل نراه و کاشفن به واسطه ارتکاز عن سنت و هی الهجه. سنت است که حجیت داره اجماع اگر توانست به خاطر ارتکاز با تکیه بر ارتکاز کاشفیتی داشته باشه نسبت به حجت خوب یه حرفی ببین تعبیر فائض جواهر اینه که میگه اجماع اصل برای اهل سنت و این اصل برای اونهاست اونها هم اصل برای اجماعند یعنی اجماع توسط اهل سنت تأسیس شده و پایگاه جدی برای اونهاست و هم اونها خواستگاه اجماع هم اجماع در واقع خادم اونهاست خب اون اجماع چه ویژگی داره اجماع کاشف نیست اون اجماعیه که در واقع حکم سازه برخلاف این اما در این تلقی ما اجماع قرار از کاشف از سنت باشه و حجت واقعی اون سنت هست خب بنابراین با توجب این نکته که قرار کاشفیت اجماع تمام بشه یه ویژگی هایی میارن برای اجماع بنابراین اگر شما در احکام موردی و به ویژه در قواعد میخوایید به اجماع توسط بکنید اجماع هم یک دلیل لبیست و میگید ما با قدر متعقن عمل کنیم چه زبابت دیگه ای داره حالا در دیدگاه میتوانه متفاوت باشه ولی حالا بیان ایشان جمع جوره و حازا و یه ممکن تلخیص و احمل خصوصیات علیتی یج و انتتواجده حتی تتم کاشفیت الاجما فی عربت امور اگه این اجماع قرار کاشفت سنت باشه که اون حجته این باید چه ویژگی داشته باشه در چه موارد چه خصوصیتی باید داشته باشه یک فتوای اقدمین رو داشته باشه وله نه فایده نداره اجماع این فقهای های متاخر و دوران میانه و متوسط اوقدل ایاکون اجما مشت فها و اقدمین من فوق های فان ولم تکن مسئله اجیت انل اقدمین فلا یفید ونا مجرد اجماع اج فوق های متوسطین متوسسطین یعنی اینجا چ؟ این دوره میان فوقه های اقدم باید در اجاع باشند چرا چون ورور کاشف باشند، این فقهای بعدی یا از روایت میخوان بگن یا از طری به اعقدامین خب پس باید صورت اقدامین. ویجی دو بام از سانی الله یو استناد و از هابلش ما الله مدرکی معیمنن به لا یح يح... لا یحتمال زالک عیzan احتمالا متضبم به خب این تعبیر رایش که میگن آقا اجماع مدرکی نباشه. حالا بعضی از اساتی ماسه مثلا آقای آسدکو آقای شیخ سید احمد مددی مثلا میگن آقا مدرکی باشه اطلاع خودش معیده اما با این روی کرده اطلاع خویی و منتبه که میگن اجما مدرکی نباشه دارن میگن که موقع این اجما حجت که خودشی هم را مستقل باشه و الله اگر میخواه بیانگیر و هاکی و نتیجه یه دلیل مدرک باشه پس خودش چیزی نیست پنج نفر بیان بگن که آقا این حکم این است چرا به خاطر این مدرک معین در واقع اون مدرک معینه رو ما اگه قبلا بهش تمثل کردیم اینجا دیگه تکراره البته داخل پنداز ممکنه بگیم یه شاهدیه به این که خلاصه علما به اون مدرک عمل کردن اون یه حرف دیگه است ولی میخوانم بگن که چیه آها این اگر حاکی و تکگاش همین روایتیه که ما الان سراغ داریم خود دیگه با حرفینه کار نداریم نه نگذاشتیم جلو آینه ما با خودش کار داریم استاد خواهش میکنم استاد خواهش. در فتن که قولا اجماع ما به هیچ مدرکی نباشه چطور میتونه کاشف از روی معصوم باشه مثلا در زمان ما چطور میتونه کاشف از روی معصوم باشه یواقید بوید منظور اینه که خود این اجماع قرار کاشف باشه ولی کاشفیتش چجوری یه موقع مدرکی بوده اون مدرک از بین رفته ظاهرا این مراده یعنی این فرماسه ها نکته سنجی خوبیه که آقا این چیه قرار خود همینجوری جوری میخواه کاشوید داشته باشیم این علما از یه جا باید فهمیده باشن میخوان بگن آقا من فهم من اینه میخوان بگن اگه روایتش الان هست خب ما خودمون به این روایت عمل میکنیم دیگه پس اجماع اگر ببینید دیگه موقع ما میگیم که این چند تا که ما بینیم اینا آینه ای هستن برای همینی که جلو آینه قرار دادیم خب پس با این آینه ها کار نداریم خود این چهی کار داریم اما بله اگر فیلم بشه از یه چیزی که دیگه الان نیست خب یه حرفی در واقع اینجا من اینو می‌فهمم الا یعلم استناد و اصحاب ال جماعه الان مدرک معینی یعنی از این مدارکی که فعلا هستن مدرک معینی که الان هست نبزه که معینه مشخصه که قابل تمثب برای ما باشه ولی اگر نه مستدر. بله بفهمید استاد برحشی حالا این سوال من این بود که حالا یه جلیل مثلا حجت بودن اجمایی که کاشف از رأی معصومه بله بله اگر اجمایی که کاشف از رأی معصوم نباشه بر ما حجت نیست حالا در زمان غیبت زمانی که امام معصوم نیست حالا علما بر مسئله اجماع کردن خب حالا این اجماعشون که ما میگیم در صورتی بر ما حجتی کاشف از محسوم باشه ما چطور میفهمیم که چطور بفهمیم که کاشف از معصومه می‌گویید اگر اون علما رو ما می‌شناسیم قبولشان داریم حرفشون یه جوری سندیت بر فرض میتونه داشته باشه اما یه ادمای مجهولی باشن یا ادمایی باشن که ادمه ناجوری باشن با اونا که کار نداریم به یه موقع این موقع عین عبارات برای ما نقل شده میگیم این روایته خب به سندش نگاه میکنیم کنیم به قرائن صدوری و محتواییش نگاه میکنیم ببینید اول اگه اینو بخوایم خوب بفهمیم بعد اصلا ببینیم مفهوم اجماع تو چه جوری مطرح شد. در واقع اجما یه جنبیه سلبی داشت ابتداعن چون که سنیا مفهوم اجما رو زیاد به کار می بردن مثلا فوق علمایی که در قوم بودن مکتب قوم مدرسی قوم اصلا مفهوم اجما کلمش هم به کار نمی رفت لسان اونها هرچی داشتن روایت بود پس ببینه الان در بین اینها اصلا نیازه به مفهوم اجما نیست اگه نیاز داشتن کلمهش به کار می بردن می آقا این روایت این روایت هم ناقلش کیه حالا سبک فهرستی هم بود در کتاب فلان آمده کتاب فلان معتبره بعد این نارو بحث می اصلا اجماع جایگاهی نداشت کجا اجماع مطرح شد این علمایی که در بغداد بودن ما دو دوره علمای بغداد داریم علما شیه یکی علمای دوره اول دوره دوم دوره دوم دیگه اتمام مثلا دو تا صد و پنجا سال مثلا بگیم تا سال 300 ست یه صد و سال قبلش علمای اول بغداد بودن دوره دوم هم دوره آل بویه بود وقتی که سلاجقه حمله کردن به بغداد شیخ توسی در به در شاگردا و علمای دیگه شیعه هم در به در و فراری بعد شیخ توسی رفتش خب در جوار امام علی علیه السلام که حالا بگیم یه دهگورهی بود یه ای نبود شاگردان پراکنده شده بودن کتاب ای نبود خب این مختلان یه آثاری داریم توی این مقاته این علما با سنیا هم نشین بودن خب هم نشینی که نه این که بگه آقا تو رای خودت برو منم رای خودم نه اینا با هم مواسه میکردن همسایه بودن برای هم احترام قائل میشدن خب وقتی که همنشینی علمی دارند، نمیشه که دمود حرفای اونها هیچ موضعی نداشته باشن ابتدا آمدن چه کار کردن گفتن خب اونا میگفتن اجماع اجماع اجماع اینا یا دمود اون اجماعی هیچ حرف نبود بزنن یا یه ضابطه براش بذارن علمای بوم اصلا نیاز به مفهوم اجماع نداشتند. اما این علمای بغداد نشین وقتی که با اونها میخواستن مواجهه داشته باشن اونا میگفتن آقا این حرف درست است چرا؟ لل روایت فلان، ل آیت شریف و لل اجماع اینا یا باید میگفتن آقای اجماعی کلن بریز دور یا یه رای ساده‌تر می گفتن آقا این اجماع شما رو ما اگه بخوایم قبول کنیم فقط در یه صورت قبول می‌کنیم در این صورت که کاشفیت داشته باشه ما آرام, آرام با این قید و ذابطه و شرط کذاری خود مفهومش هم آمد تو فضای شیعه تو کتاب های شیعه مونتا معناش دیگه عوض شد اونا اجمایی که میگفتن اجمایه کاشف نبود عمدتن. حال ممکن بعضی جا هم کاشفم بگن اجمایی که اونا که میگفتن اصلا پایش بر این اساس بود که کتاب و سنتی نیست و علما اجما اجماع کردن بعضی اشان هم حالا کمی ممکن کاشف هم به کار ولی اصلش اینکه که صاحب جوار میگن هومل اصل الله و هول اصل الله هم بله هم و خلاصه این چرا؟ که این اجماعین ها اجماعی کاشف نبود اجماع در واقع منشع بود ایجاد کننده حکم بود علما آمدن گفتن که آقا ما اجماع رو موقعی میپسیریم که کاشف باشه ای ای این تعبیر رو برای اونا به کار بردن وقتی که این تعبیر به کار بردن بین خودشون هم ازدار شد بعد رسیدیم به یه فضایی فضای انقطاع علمی خب وقتی که علما در نجف بودن، در ببخشید در بغداد بودن، یه رونقی کارشان داشت، آل بویه کمکشان میکردن ولی اون که خلافت دست دیگران بود، ولی قدرت اصلی دست آلبویه بویه بود. خب قرائنم تو این مدت دستشون بود. درست قرائنه خلاصه اطراف روایات. بعد که حمله شد، سلاجقه آمدند. کتابخانه شیخ از بین رفت خیلی علماء کتابشون از بین رفت خودشون به حرال پراکنده شدن حال بعد هم آرام آرام یه سری قرائن از دست رفت این که میگن آقا بعد از شیخ توسی خلاصه یه جور زوال اشتهات بود اگر این شراط اجتماعی سیاسی نگیم آدم فکر میکنه عجبی مندگان خدا مثلا این ناوز بالله، آقا چه آدمای ضعیفی بودن، چه مشکلی داشتن، بی سواد بودن، همش تابع شیخ بودن. نه، یه بخشش هم من برداشتم اینه که اصلا تکاپوی حوزه از بین رفت. وقتی حوزه از بین بره، حالا یه بنده خدای خدایی کلی زحمت می‌کشه تو همون فضا چون جای مباحثه دیگه نیست که خواهد ابدای صورت بگیری به صورت جمعی به صورت جدی حالا دو تا موضوع میان یه استنباطی میکنن یه مقداری امکانات دیگه نیست حمایتی نیست خب اینا هم در حواشیش حالا این تیکه از بس خارجه بعد تو این مقاطه این لابله ها یه فتاوای، یه موضوعاتی خب از قبل بودش یه موضوعاتی نبود بعد علمای میبینیم که یه فتوایی دارن میدن بعدی که میان میگن میگن آقا ببینی این اجماهیه پس مفهوم اجما اول سلبی زاده شد میخواستن جلس و نیا بگن که آقای حرف شما درست نیست ولی دیگه نمیشد به این تندی بگی میگفتیم آقا اجما موقعی به بخوای که کاشف باشه بعد دیگه آرام آرام فراموش شد که ما اینو داشتیم جلس و نیا میگفتیم آرام, آرام تو ادبیات خود ما یه چیز جدی شد بعد به خاطر تغییرات فضا و اینها یه مقداری بعضی جاها هم تعبیر اجماعیون اجماعیون هم آمد و یه جاهایی که فتوایی سابقی نبود یه روایاتی بالفاین شده بود قرائن روایی از بین رفته بود توی مختب برای خیلی گفتن اجماع اجماع اون وقت سوال شد خب آقا این اجماع چیه این اجماعی که شما میگید حجت حجت نیست و این مباحث اصولی بعداً در این اجماع شک گرفت خب پس من برداشتم در مورد حالا خود اون خود اون اجماع چیه که بس اجماع مدرکی یعنی یه جایی فقط ادعای اجماع داریم دلیل یا نیست روایتی نیست یا اگه باشه ما, ما یقین نداریم که به اون مستند باشه ولی اگر یه روایتی باشه ما بفهمیم که این اجماع به خاطر اون مجمعین با ترسط به همین روایتی که الان دست ماست کار کردن من برداشتم اینه اون جایی که یا روایتی هست و ولی فکر نمیکنن که به اون تمسک شده یا روایتی نیست خلاصه در اونجا این میشه اجماع اجماع غیر متزکی خب پس این شرط دوم شد الله يعلم استناد و اصحاب اجماع علمت مال یعنی در واقع من اینجا یه قیدی اضافه کردم ها علمت که معینن که نزد ما باشه اگر برداشت من درست باشه از فرمایش علما تا حالا من بندی مینه حالا ممکنه بیشتر کار کنیم مثلا ببینیم اجماع متزکی رو جور دیگه بگن مطلق بگن نه با اون قیدی که من آوردم بلا یختم ذالک ایزا احتمالم متعدم به از لوکانه که ذالک لکانه تمحیص و حازل اجماعه به تمحیص ذالک المدرک اگه اینو میخوان کنکاش بکنن اینو میخوان خالصش بکنن با توسط به اون مدرک است نه قد يكون الاجمام مقويا و مؤدا للدليليه دلیل بله اجمال و یک موقع میگیم آقا این اجماع هم. اون دلیله رو داره تقویت اون یه بحث دیگه است ما که خودش چه اعتباری داره حالا کمک کار اونه یه بحث دیگه است ما اگه مدرکی باشه قبولش نمیکنیم ولو اینکه حالا کمککار کار اون باشه قید شرط سوم میگیم. ببین ما الان پس در لابلای سنت مخصوان شهیستت بحث ارتکاز خیلی جدیه اینجا ایشان هم میان چه کار میکنن میگن که اگر یه موقع قرینه داریم که ارتکازی وجود نداره یه حرف دیگه است شرط ثبوت اینه که غرائن نافی ارتکاز نباشه ان از سالس و انلا تکونه هنه که قرار اینو تنفی وجود وجود ارتکاز لذی عرد نا کشف او به واسطه الاجما ما از اجماعی میخوایم یه استفاده بکنیم یه نتیجه گیری بکنیم بگیم آقا یه اج... ارتکاز اونجا وجود داشته نسبت به فلان محتوا قرینی خلاف اون ارتکاز و اون نتیجه گیری و قرینی مخالف اون جمبندی نداشته باشیم و الا لکانت مزاحمه لكاشفیت الاجماع ما قرار بود از کاشفیت اجما استفاده کنیم اجماع کاشفو میپسن میپذیرفتیم حالا اگر یه ادله داشته باشیم که اون کاشفیتش رو ببره اون مکشوف رو خراب کنه نه دیگه مثال میزنه طهارت کتابی که میگه آقا ما یه قرائن متعدد پیدا کردیم تدل و علا عدم وجود الارتکاز علا نجاست کتابی من قبیل سنخل از علت الوارد فرعات علا السنطر رواد. میگه اون ادله ما پیدا کردیم که میگه آقا ارتکازی به نجاست کتابی نداریم خب ادمشانی همی شرط چهارم جلد دو صفحه سی, سو سی سو پنج. مسئله مسئله تن لای و ترقب و حلها الا به بیان منشاره مسئله یه چیزیه ببینید ما الان دلیل دیگه نداریم میبینیم فقط اجماع این علمای قدیم هم که آدمای های متعهدی بودن متدینی بودن گتری عمل نمی کردن مسئله هم و سعلب روبا آیا نجسه یا نه این الان میبینیم هیچ ربطی نیست این مثلا یه چیز شرعیه مثل نجاسته خب بعد میبینیم اینو قائل به نجاسته یا قائل به نجاست نیستن ولی مستندی نیست اجمام مطرح شده پس اگر یه چیزیه که شرعیت داشته باشه موضوع شرعی باشه مقولی شرعی باشه اینجا جای خلاصه ورود اجماع میتوانه باشه اما ماکانه یا ترقب حلا به غیر تصدد شاره کما ازاکانت او تطبیقیتن یا اقلیه یا تطبیقی فمن المحتمل ان المجمع این تبدو غیر دلیل شرعی اینا که یه حکمی رو قائل شدن چه بسا تو این مورد به دلیل شرعی عمل نکردن سمال اجماع اللذی تتوفف رو فی حازل اون قد یکون لمرقده قدر متیقن و اطلاقون و بقی خب البته این جمله باید دیمیقی حل بشه گاهی آقا میگه معقدش قدر متیقن داره و اطلاق داره ما گفتیم آقا عدل لبی خود شما بزرگوان فرمودید که آقا عدل لبی اطلاق نداره قاعدت هم باید بگیم تو اون قدر متیقنه دیگه و الله چون قدر متعقن یعنی کف کار اطلاق یعنی اون حد نهاییش این واف که میاره یه جوری در واقع شاید مفسر باشه میگه که گاه یقات معقد اجما قدر متعقن و اطلاق داره بین بقیه انیول تفت الا ان کاشفیت الاجما ان القدر متعقن فی المعقده اقوام این کاشفیت به لحاظ اطلاق یه قدر متعقن داریم یه اطلاقی شاید مثلا محل بحثه میگه که گفته اینجا کاشفیت از قدر متعقن بیش از اون کاشفیت به لحاظه اطلاقه پس که هم نمیخواه بگه که آقا اون اطلاقه توسک نکنیم همون قدر متعقن در واقع اینجوری بگیم میگه با اون کف کار توجه کنیم یا اطلاق پس این تناقض با حرفای دیگه نگیریم میگه یه قدر متعقن میتوانیم فرض کنیم یا اطلاق خب میگه کدامش رو توسط کنیم میگه کاشفی اجما نسبت به قدر متعقن و میشه قبول کنیم چون این نسبت به اطلاق و این کانال اجما قایمن علال اطلاق اگر محقت اجما بر مطلق باشه قایمن علال مطلق فا این خطر مجمعین فی تشخیص اصل الارتکاز ابعطمن خطر فی حدود هازل ارتکاز اون اصل ارتکاز رو خلاصه میشه بگیم کم خطاست اما در مورد این که این مطلق باشه خیلی نمیشه خلاص زیر بار بدیم اونجا خطاش میتوانه بیشتر باشه این بحث رو در بحث اجماع محصل فرمودند. یه فقره دیگه در اقتصاد اج... نام میگن که به اجماع مدرکی میشه تمثل کنیم یا نه اگر یه جای مستنده مثلا به قواهد باشه چطور میگن و اما در اول اجماع الان تو مورد میگن تو بحث اجار و سجار و اینها علا انده فلان فلان, فلان فهید دعوا غیر و مقتون به صحت ها تو این مورد دعوای اجما میگه درست نیست برفرضم که میگه اگر قبولش کنی من رو ذهن رو نمیخوام درگیر موضوع موردش رو کنم بعضی عبارات رو نمیخوام موردش رو کار نداریم تو این مورد دعوای اجماع دعوای غیر و مقتون به صحت چرا؟ میگه حتی اگر فلا مورد رو ما قبول کنیم نمیشه قطع قب... بیدا کنیم لن من المحتمل استناد و کثیر من المجمن الال اعتقاده الال اعتقاده به ان نقواد الاجاره تخت ازی یعنی یه جور اجماع مدرکیه ولی مدرکش به جای که بگیم یه روایته اجماع مدرکیش از نوع تمثلتی به قواعد میگه <تصفح> احتمال داره خیلی در بحث این اجاره به قواعد اجاره تم... در واقع تمثل کرده باشن ایمانم من هم بل ملازم و بین ملکیت الهیازم و ملکیت موضوع ها یه پیشفرزی دارن لذا به قواعد اجاره تمثل کردن و حیث ان انا لان رو یا موقع روحاز اساس فلای کنال اجماع به نسبت الله اینا تبدی اجماع اینا مدرکیه ولی مدرکش چی بود؟ قاعده بود پس ایشان هم در واقع این اجماع مدرکی رو در این مورد خلاصه قبول نمی کنن. پس این بحث اجماع یه مورد دیگه از سیره ببخشید از ادله لغبی توسط به سیره اقلاییه طبیعتاً تمثلت به سیره اغلایی هم نیاز بند و یک مهمترین شرطش در این موارد عدم رد سیره است سیره اغلایی رو اهل بیت رد نکرده باشن این مهمترین شرطه خب توی این مورد مثلا شهید صدر میان یه فروعاتی هم براش در نظر میگیرن میگن آقا این رد باید با شدت قرزم تناسب کمی داشته باشه همینجور نیست که بگیم رد داریم رد نداریم اگه سیره پس تمسک سیره همجرون نیست هر جایی ما بخوایم بگیم بلکه خلاصه باید به سیره در جایی که شرایطش باشه ما تمسک کنیم در کتاب شریف مباعث و رسول جلد دو صفحه 234 در بحثی میگن الوت شو سانی محخوظ و منبهست سیره و هوا اندوس خب حالا اینا رو بلش کنیم این رو بگیم وقت قول نافی بحث سیره ان رد اعن سیره یکون بل ملاک تفوز ان القرز این سیره رو شما اصلا چط برش میذارید که رد نشده باشه خب این ردع از سیره چه موقع شکل میگیره میگه آقا شما نگاه کن ببین اینجا قراز چیه اون با توجه به قراز اینجا ببین آیا اون ردع انجام گرفته یا نه مولای قرازی داره بنابراین خلاصه باید ببینی چقدر چگونه حاصل میشه میگه وقت قول نافی بحث سیره این نردعه انه سیره یکونو به ملاک تحفظ علال غرز فلابدن یکون مناسبن لی مقدار استحکامه ها حتی یحصل تحفظ و علال غرز بعد اون شکل گفتنشو بیانشو کمیت بیانش متناسب با اون قرضش باشه مثلا اینجا میگه برفض آیات ناهیه ای که از عمل به زن ما آیاتی داشتیم که عمل به زن رو ممنوع اعلام میکرد ایشان میگه آقا اونها مطلق بودن اطلاق اونا به درد این نمیخوره که ما اگر خواستیم میگیم خبر واحد حجیت داره بگیم خبر واحد حجیت ندارد چرا؟ چون که آیاتی داریم که میگوین عمل به زن باطل است درست نیست این یه اون اطلاقش قدر جان نداره برای اینکه ما توسط به اونها بکنیم برای رد حجیت خبر واحد چرا چون که این خبر واحد در توسط سیره و مقبوله وقتی که خبر واحد نزد سیره و مقبوله و دارای حجیت این یه نقطه جایگوش مستحکمه شما اگه میخوای سیره رو پس ما خلاصه عرضمون چی شد؟ گفتیم باید رد از سیره داشته باشید ولی بعضی جا دوچار مشکله مثلا تو حجیت خبر واحد ما به سیره اقلایی توسک میکنیم و سیره اقلایی که پشتیبانی این یه چیز قویه و نمیتوانید شما خلاصه این سیره اقلایی نشان میده که اهلو بیت هم پیانبرم قبولش داره اینه حالا این رو اضافه میکنم بنابراین صرف این که بگیم مطلقاتی داریم این کافی نیست به تعبیر من بازی نضافه میکنم یعنی این سیره این قدر قویه چونان ارتکازی برای شما میتوانه درست کنه شما بگید اصلا چون این اطلاقی نداریم نگید این دوتا دلیل شد آیات ناحیه مطلقا سیره مقابلشه ببینیم کدام مقدمه آیات قوی تره میگیم نه اصلا این سیره چنان قفتی داره که میتوانه ارتکاز درست کنه کشتران اون اطلاقا رو از اطلاق بیاندازه نه اینکه شما بگید اطلاق دارد و بعد به اونا تمسک کنید برد رد سیره نه این سیره تو این مورد نه موردی تو این مورد خبر واحد میتوانه پشتوانه خوبی برای خبر باید باشه به اندازه ای که اجازه نمیده اصلا این اطلاق مطلق حساب بشه این حالا تقریر من بود بر اساس مذاق شیستت و من هنوز شنید صبر ایل آن ادلاع القایت النهی عن العمل بزن مثلا لا یمکن یکن رادن عن حدیت خبر الواحد بعد فرض اند مورد لسیرت القایت و ایل آنذا فکایف یو قلول اکتفاف فرد عن مثل ها ذی سیره فی باب حدیت ظهور المستحکم جزور فی اذعان هم به ادلاع ها ذر رواير اینو باید اینقدر با با این تو اذعان اینو هست که جلوی تاسبون ادلاع میگیره یعنی اصلا مطلق نیست علتی نهتا جلل بست مقام بیان انه او حل اطلاق اطلاقون اولا بعد مورد دیگه میگه که خالا تو اون بحث وچه سربوم هم باز میگه که خلاصه در سیره ما بحث کردیم که سیره متشرو از خواب احمه قائم بر عمل به زرور قرآن بود و این هم خلاصه در از هان اونها پر رنگه خلاصه میگه در اون مورد در ذو تمسک به ظهور قرآن میگه فصیلت المتشاهده اصحاب الائمه کند قائما عل العمل به ظهور القران جیلا بعد جیل جیل یعنی نسل مثلا بعد نسل دارن به این ظهورات عمل میکنن و لو لم یکون حازا من المسلمات فی ایام الائمه حتی اگه مسلم هم نباشه بلکه مشکوکن لکس را از سوال انها اگه مشکوک بود یا آلم سوال ترمی شد خدمت اهل بیت که میپرسیدن گفتن آقا حجت حجت نیست پس چرا یک سوال نیست میگیم چرا بعد مشکوک این بس ها سوال میشوند لنام این المسوال ذات الامنیت غصفال لو اکل و لو کس را از سوال کس سوال کس را جواب اگه سوال هم زیاد بود طبیعتا جواب هم زیاد میشد خلاصه به ما هم یه جور میرسید دیگه خب اینا رو کار نداریم یه فقراتی میاندازم با مصادق تطویقیش کار نداریم این رو می ارزم کنم و حاضر احد و تطویقات للقوانین لکلیت لکتیزه بحث سیره در سیره ما یه قوانین کلی داریم بنابراین نتیجه اینه که بعد از سبوت سیرت ازقابل الام... عمله به زواقرن لا تکن اطلاقات مفوه فل مقام من روایات من ان تثیر به رد را دتن ان بله سیره بلله سییر مقعهتون ل اطلاع این سیره اینقدر قویه که شما تنها به اطلاقاات اون و تص کنیم بلکه این این که در ازظ عمومی هست این سیره اطلاقه رو چه کار میکنه مغیط میکنه لما زکرنافی محل من انل حاجه الا احراز عدم رد این به نسبه سیرت الاغلائیه سیره اغلائی باید احراز بشه عدم ردش اینجا چیه اینجا خلاصه اینگونه نیستش خب ما دیگه ای فقره کتایی هم اشاره بکنم و عرضم تمام تو کتاب شرف اقتصادون هم می فرماین. صفحه 708 میگه خلاصه یه طایفه از بحث از طایفت و سانی از روایات رو میخوا بحث کنم که کار نداریم میگه این طایفه محسلی نداره چرا؟ چون یه سیره قطعی داریم بر عدم اعتای محیل للخراج، این کسی که احیاءگره خراج نمیده از زمان ائمه تا حالا این میگه قدوی اینجوریه <تصفح> که این طایفه به درد نمیخوره جواب میدیم میگه میغا این سیره به درد نمیخوره اینی که شما دارید میگید چرا چون که دو تا احتمال داره اگه اراده سیره متعبدین به نصوص اهل بیت کردید اینجا ممکنه خلاصه چون مشکل داره این عوری دستی را تو المتعد به دین به نصوص احل بیت فلعا لعدم اجرم به لحاظ اخبار تحلیل باشه اینا اجرت نمیدن ایب نداره چرا ممکنه به خاطر اون اخبار تحلیل باشه که خمسته میخواب دید و اینا لا به اعتبار انقطاع سلط الارض و الامام بعد الهیام اگر هم سیره دیگران همگید از مسلمانان و این عید سیره تو غیره مین این فعین نذاله که عجله مشیم اساس اسن فین وخر او یه مح... اگر مهم... سنیار رو خواهید بگید مبرای اون رو فرق میکنه پس بنابراین این سیره تو این مستاق، قابل تمثلت نبود پس بنابراین اصل نکته اینه که اگر ما بخوایم از سیره استفاده بکنیم حواسطمون باشه که این سیره اینها چی هستن؟ سیره اقلائی یا عرف آم اینها خلاصه یه اسبابی میخوان همینجوری نمیشه بهش توثب کنیم این نهازه سیره لم تدور لدن اسباب این الاسباب تکفیل الالم به وجودها باید ما اثبات بشه برای که اون سیره اصلا وجود داشته بعد امتدادها و امتدادها و انتشارها فی اصلا تشریح تو اون موقع انتشار داشته الا درجت اندیستک شف و من عدم وصول رد انها اول باید شما اثبات اون سیره تو اون زمان بکنید انتشارش اثبات بکنید. تا بعد خلاصه بگیم که همین که رد به ما نرسیده این به درد نمیخوره بلا این چونکه لنه ها نمیشه به این توسط کنیم و ازرطرفنا به آز سیره و وجاحت الاستقلال به ها ف اهیا این نما تدل فل مواردی لاتی یو قلم بشمول سیرالله ها اگه بدانیم که سیرش شامل این مستقیم نظر ما هم هست ولی نمیشه چرا؟ چون دلیل لوبیل، آنها دلیل لوبی اون یعنی کنال استقلال به آهی نزدن ایلا في ما فلان لأن حاوز سوره لیست متيقناً تن منصیرت جزماً این هم صفحه 732 بنابراین چون که دلیل لبیه سیره و قلائی یا عرف آم این باید هم شرایط اثباتش رو ما احراز کنیم هم عدم رد رو و اونجایی که ما می خوام تعمین بدیم خلاص دلیل لبیه ما نمیتوانیم الحمدلله رب العالمین صلی الله علی سيدنا و نبینا ابو القاسم محمد لقص على أهل بيت طاهرين